به نام خدا کتاب داستان های یوگوسلاوی نوشته نادا چورچیا پرودانوویچ، مترجمان کامیار و مهیار نیکپور ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده اعظم گرایی سلام به مخاطبان کانال هزار افسان، امیدوارم حالتون خوب باشه، داستانی که میخوام بهتون تقدیم کنم از کتابی هست که مشخصاتش ذکر شد به نام کبادالوک یا پسرک عرب یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود در زمانهای بسیار بسیار دور پادشاه قدرتمند در کشور قسطنطنیه یعنی همون استانبول امروزی زندگی می‌کرد که دختر بسیار زیبا و قشنگی داشت و از داشتن این دختر همیشه به خودش افتخار می‌کرد. یه روزی از روزها تصمیم گرفت که دخترش رو شوهر بده. به خاطر همین بین درباریان به جستجو پرداخت تا شاید از بین درباریان یکی رو بتونه انتخاب کنه که لیاقت دخترش رو داشته باشه. اما هرچی گشت نتونست کسی رو پیدا کنه که لیاقت دختر زیبا و داناش رو داشته باشه. به خاطر همین چند تا از افراد مورد اطمینانش رو صدا زد و به اونها گفت که به بندرگاه برن و کشتیهایی رو که از نقاط مختلف جهان میان توی اون بندرگاه ببینن که اگر مسافری لایق و شایسته یه همسری دختر پادشاه دیدن بیارنش بیش پادشاه. افرادم یک روز سوار بر اسب ها شدند به بندرگاه رفتند. اما هر روز که به بندرگاه میرفتن دست خالی برمیگشتند چون فرد مناسبی رو که به دختر شاه بیاد پیدا نمیکرد. اما هر روز میدیدند که یه درویش کنار ساحل نشسته و روی کاغذ چیزهایی رو می نویسه و اون کاغذ رو داخل آب میندازه و از این حرکت ترویش تعجب کرده بودند. یکی از روزها یکی از اون افراد رفت پیش درویش و گفت ای درویش این چه کاریه که تو انجام میدی رو کاغذ چیزهایی رو مینویسی و میندازی داخل آب درویش گفت کار من اینه که دختران و پسران جوان رو وادار به ازدواج و زناشویی میکنم و اسم اونها رو روی این کاغذها مینویسم و میندازم داخل آب افراد هم تعجب کردند و برگشتند پیش پادشاه و به پادشاه گفتند ای پادشاه ما نتونستیم شخص مناسبی رو برای دختر شما از بین مسافران کشتی پیدا کنیم. اما یک چیز عجیب دیدیم درویشی کنار ساحل نشسته بود و روی کاغذ چیزهایی مینوشت و وقتی ازش پرسیدیم درویش به ما گفت که دختران رو پسران جوان رو به ازدواج وادار میکنه پادشاه گفت ای ابله ها چرا ازش نپرسیدیم که اسم همسر دختر من چیه و اصلا دختر من با کی ازدواج میکنه الان برین و ازش بپرسیم. این افراد که بسیار خستههم شده بودن از اینکه چند روز از صبح میرفتن و شب برمیگشتند ناچار دوباره راه افتادند به سمت بندرگاه رفتند و درویش رو پیدا کردند و از درویش پرسیدند که ای درویش آیا برای دختر سلطان هم کسی رو در نظر گرفتی آیا میدونی که اسم همسر دختر پادشاه چیه؟ درویش نگاهی به اونها کرد و گفت من چند سال پیش دختر پادشاه رو شوهر دادم افراد اینو شنیدن و اومدن پیش پادشاه و حرف درویش رو به پادشاه زدن. پادشاه عصبانی شد و گفت چرا اسم همسر دختر من رو نپرسیدین دوباره الان حرکت کنین به سمت بندرگاه و اسم همسر دختر من رو هم بپرسید دوباره افراد خسته و نالان سوار عصب شدند و رفتن سمت بندرگاه و دوباره رسیدن پیش درویش و به درویش گفتند ای درویش ما یادمون رفت که اسم همسر دختر پادشاه رو ازت بپرسیم درویش نگاهی به اونها کرد و گفت اسمش کبادالوکه افراد خوشحال شدند و اومدن به سمت قصر پادشاه رسیدند پیش پادشاه و گفتن که ای پادشاه اسم همسر دختر شما رو پرسیدیم و درویش گفت اسمش کبادا پادشاه گفت چرا ازش نپرسیدین که این فرد چه کار است و کجا و از کجا میاد. باید همین الان برین و از درویش بپرسیم. دوباره افراد خسته و گرسنه به راه افتادند و رفتند لبه ساحل اما دیگه درویش رو اونجا ندیدند هرچه چه گشتند نتونستند درویش رو پیدا کنند ناچار ناراحت و خسته برگشتند پیش پادشاه پادشاه منتظر افراد بود وقتی اونها رو دید گفت چی شد افراد ناراحت سر به زیر انداختن و گفتن ای پادشاه بزرگ ما رفتیم اما درویش رو پیدا نکردیم پادشاه که بسیار عصبانی و خشمگین بود اونها رو مرخص کرد و گفت برین استراحت کنین از شما من ناراضی هستم چون نتونستین پیدا کنین که این کبادالوک کیه و کجا زندگی میکنه یکی از شاه که اونجا بود به شاه گفت ای سرورم میتونیم یه فکری بکنیم که بتونیم این کبادالوک رو پیدا کنیم. پادشاه گفت چی کار کنیم؟ این خدمت گذار گفت بهتره شما یه دروازه جدید برای شهر بسازید. و به تمام امپراتوری خودتون دستور بدین که مردم باید از این دروازه عبور کنن و اسمشون رو به مانخوردار و کاتب شما بگن و اینجوری تمام مردمی که در اقصا نقاط جهان جایی که امپراتوری شما هست دارن زندگی میکنن باید بیان از این دروازه عبور کنن و وقتی از این دروازه عبور میکنن باید اسمشون رو به مهردار شما بگن اون وقت ما میتونیم کبادالوک رو پیدا کنیم پادشاه خوشش اومد از این تصمیم و دست دور داد بلا فاصله این دروازه شهر رو بسازند. رفتند و خدمتگزاران و این دروازه رو ساختند پس از ساخت این دروازه پادشاه یک روز رو تعیین کرد و به همراه درباریان رفت کنار این دروازه و به مردم دستور داد که از تمام نقاط جهان بیان و از این دروازه عبور کنند و اسمشون رو به مهردار پادشاه اعلام کنند. مردم هم در روز تعیین شده دسته دسته میومدند از این دروازه عبور می کردند و اسمشون را به مهردار میگفتند. نزدیکی های غروب شد و بیشتر مردم از دروازه عبور کرده بودند. پادشاه اومد پیش مهردار و پرسید که آیا کبادالوک رو پیدا کردین؟ آیا کسی به اسم کبادالوک رو ثبت کردین؟ اما مهردار ناراحت گفت: ای پادشاه، این همه آدم رو که ما ثبت کردیم، اسمشون رو کسی به اسم کبادالوک نیومد. پادشاه خیلی ناراحت شد و عصبانی. مهردار گفت: ای پادشاه بزرگ، به من دستور بدین که من برم داخل شهر بگردم شاید باشن مردم ناآگاه و نادانی که باز از دروازه شهر عبور نکرده باشند. من میرم و داخل شهر میگردم و اگر چنین شخصی را پیدا کردم اسمش رو میپرسم. پادشاه قبول کرد و مهردار همراه چند نفر داخل شهر رفتن. رفتند و رفتند تا به شهر و جنگل رسیدند. وقتی رسیدن به جنگل پسرکی رو دیدن که داره توت میخوره و جنده پوشه و لباسهای بسیار کهنه تنشه و بسیار لاغر و زشته. از پسرک پرسیدن ای جوون اسم تو چیه؟ پسرک گفت کبادالوک. این پسرک که عرب هم بود تعجب مهدار رو برانگیخت مهدار بهش گفت اسم تو چیه دوباره ازش اسمش رو پرسید و پسر گفت که بادالوک مهدار پیش خودش تعجب کرد و گفت بعید میدونم دونم که این همونی باشه که پادشاه دنبالشه اما با این حال باز پسرک رو با خودش آورد پیش پادشاه اومد پیش پادشاه و گفت ای پادشاه بزرگ من نتونستم داخل شهر کسی رو پیدا کنم که از دروازه عبور نکرده باشه اما درون جنگل این پسرک رو پیدا کردم که عربم هست و اسم خودش رو کبادالوک میگه پادشاه که پسرک که پوش فقیر و رودید رو دید خیلی عصبانی و ناراحت شد و گفت این نمیتونه در شعن دختر من باشه و اسمش کبادالوک باشه. این همون کبادالوکی نیست که ما دنبالش هستیم و از اونجایی که بسیار عصبانی شده بود دستور داد که ببرند پسرک رو گردن بزنن. مهردار پسرک رو با خودش برد داخل جنگل تا اون رو گردن بزنه. اما بین راه دوباره پسرک عرب چند شاخه توت چید و به مهردار تعارف کرد و گفت بیا این توتها رو بخور. مهدار که آدم مهربونی بود دلش برای پسرک سوخت و نخواست که گردن پسرک رو بزنه. به خاطر همین رو کرد به پسرک عرب و گفت اون کوه روبرو رو, رو میبینی بهش میگن کوه نیلگو پشت اون کوه دریاچه ای هست میشه من این جعبه رو به تو بدم و تو بری از اون دریاچه برای من شنو خاک و ماسه بیاری پسرک خوشحال شد و گفت باشه من خوشحال میشم که بتونم برای شما کاری انجام بدم و جعبرو رو گرفت میخواست که بره. اما مهردار که دلش سوخته بود یه سکه طلا هم به پسرک داد و گفت این هم توشه سفره و پسرک رو فرستاد به سمت، کوهای نیلگون و پیش خودش فکر کرد که درون اون کوه اژدهایی زندگی میکنه که وقتی پسرک به اونجا میرسه صد درصد اژدها پسرک رو میخوره و دیگه کشتن پسرک به گردن مهردار نمیفته اما بشنویم از پسرک عرب پسرک راه افتاد رفت و رفت و رفت سه شبان روز پسرک تو راه بود تا رسید به کوه نیلگون وقتی رسید به اونجا دید که اونجا انگار دنیا متوقف شده هیچ صدایی از هیچ کس نمیاد آب دریاچه راکت راکت آروم آروم و بدون صدایه و اجده قعر دریاچه به خواب عمیقی فرو رفته پسرک که خیلی خسته بود دستش رو داخل دریاچه زد تا دست و صورتش رو بشوره تا دستش رو داخل دریاچه زد و بیرون آورد دید ای دست سیاه و زشتش تبدیل به یک دست بسیار زیبا و قشنگ شده پسرک خوشحال شد و از اونجایی که خسته بود لباسهاش رو درآورد و رفت داخل دریاچه شنا کردند. وقتی اومد بیرون تبدیل شده بود به یک پسرک بسیار زیبا و خوشچهره خودش از دیدن خودش تعجب کرد به خاطر همین سری لباسهاش رو پوشید و از ماسه و سنگ ریزه های کنار دریاچه اون جعبه رو پر کرد و گفت بهتره هرچه سریتر این جعبه رو پر کنم و ببرم بدم به اون پیر مرد مهربون. اجدها هم که خواب بسیار سنگینی داشت و بیحال و بی حوصله بود از خواب بیدار نشد و پسرک با خیال راحت جبر و پر کرد و راه افتاد تا بیاد و برسه به اون پیرمرد مهربون. پسرک اومد و اومد سه شبانه روز را خوت کرد رسید به نزدیک یک دهگده. از اونجایی که خسته بود رفت به یک مهمان سرای کوچیک تا شب اونجا استراحت کنه. صاحب مهمان سرا که چهره پسرک رو دیده بود پسرک بسیار زیبا و دلنشینیه اما لباسهای پارهی داره پیش خودش فکر کرد که لابود این پسرک از اون جوونهای پولداره که الان برشکست شده. و پسرک با اون یک سکه یه طلایی که اون پیرمرد مهربون مهردار بهش داده بود اون شب رو درون اون مهمان مهمانسرا استراحت کرد و غذا خود. و دوباره فردا راهی اون شهر پیرمرد شد رفت و رفت تا رسید به یه شهر پسرک فکر کرد که اونجا قسطنطنی است. رفت داخل شهر اما دید که اصلا اینجا هیچ شباهتی به قسطنطنیه نداره. اما از اونجایی که بسیار خسته و گرسنه بود، داخل جعبه و نگاه کرد یه سنگریزه رو که بسیار درخشان و قشنگ بود رو پیدا کرد و رفت دم دکونه یه کسی که سنگ های گرون قیمت میفروخت. رفت سنگ رو نشون اون مرد دکاندار داد و گفت من این سنگ رو برای فروش دارم. دکان دارم که چهره زیبای پسرک رو دیده بود. پیش خودش فکر کرد که لابد این یه تاجره برشکسته است و حالا اومده اموالش رو بفروشه. به خاطر همین تا چشمش به اون سنگ گفتاد و پسرک گفت من این سنگ رو سیصد قروش پسرک که تعجب کرده بود گفت 300 قروش اما دکاندار گفت خب 400 قروش ازت میخرم پسرک گفت 400 قروش و دوباره مرد دکاندار گفت 500 قروش میخرم پسرک بسیار خوشحال شده بود و فکر که نمیکرد که این سنگ انقدر قیمتی باشه اون سنگ رو فروخت و با پول اون رفت غذاهای خوشمزه خورد حمام کرد و لباسهای زیبا خرید و پیش خودش فکر کرد چرا الان بره پیش اون پیرمرد مرد حالا که اینقدر سنگهای گرون قیمتی رو داره به اون مرد خودش بره به اون دریاچه و سنگ های اونجا رو برای خودش بیاره به خاطر همین چند تا از اون سنگ ریزه ها رو فروخت و برای خودش قصر بسیار قشنگ و زیبایی که قشنگ تر از قصر پادشاه بود خرید و بسیار زندگی مجلل و پر زرق و برقی رو برای خودش درست کرد و کلی خدمتکار و خدمتگزار برای خودش استخدام کرد و به خوبی و خوشی زندگی کرد تا اینکه داستان این پسرک پولدار به گوش پادشاه رسید از اونجایی که پادشاه هنوز برای دخترش شوهری پیدا نکرده بود به سربازاش گفت برن و این پسرک رو شناسایی کنن و ببینن این پسرک کجا زندگی میکنه کی هست و آیا به درد همسری با دخترش میخوره یا نه؟ سربازها به همراه مهردار براه افتادند و رفتند به شهر پسرک و وقتی اونجا رسیدند و وارد قصر اون پسرک عرب شدند خیلی تعجب کردند از زیبایی و تجمل قصر و رفتند و اون پسر پولدار رو دیدند. مهدار که دیگه اون پسرک رو نمیشناخت، چون پسرک تبدیل به یک فرد بسیار زیبا و لباسهای فاخر شده بود و اصلا فکر نمی کرد که این پسر همان پسرک عرب جنده پوشه پیش خودش گفت این پسرک به درد همسری دختر پادشاه میخوره. رفع به پسر سلام کرد و گفت پادشاه سلام می رسونه و پیغام داده که آیا حاضرید شما به دامادی پادشاه در بیان؟ پسر که بیش خودش بسیار خوشحال شده بود قبول کرد و گفت آره من راضیم که به همسری دختر پادشاه در بیان. و به خاطر همین رفت از درون جعبه‌ای که دستش بود مقداری طلا و جواهر و گردنبند مرواریدی رو درآورد و داد به مهردار و گفت این رو ببرید هدیه بدین به دختر پادشاه تا روز عروسی اون رو به گردنش بیاویزه مهردار اون جعبه به نظرش آشنا اومد اما ترسید سؤالی بپرسه. اون جعبه رو گرفت و همراه سربازان برگشت پیش پادشاه و هر چی دیده بود از اون پسرک زیباروی پولدار رو به پادشاه تعریف کرد پادشاه که بسیار خوشحال شده بود دستور داد که تا چند روز دیگه مراسم عروسی رو راه بیاندازن تا به پسرک خبر بدن که بیاد به قسطنطنیه و اونجا مراسم عروسی رو برگزار کنه دوباره سربازها پیش پسرک رفتند و به اون اعلام کردند که برای چند روز دیگه به قسطنطنیه بیاد و مراسم جشن عروسیش رو برگزار کنه. کوبادالو که قسته ما هم بسیار شیک و آراسته راه افتاد به سمت قسطنطنیه و اومد اونجا و مراسم بسیار با شکوه عروسی اونجا برگزار شد. اما مهردار که پیش خودش اون جعبه رو دیده بود و تعجب کرده بود و تا الانم اسم و رسم این پسرک رو نپرسیده بود پیش خودش گفت بزا برم از این پسر بپرسم که اسمش چیه رب پیش پسر و به پسر گفت ای داماد پادشاه ای پسر زیبا و خوشچهره و مهربون من هنوز اسم شما رو نمیدونم کبادالوکم که ترسی از کسی نداشت گفت اسم من کبادالوکه پیرمرد مرد خیلی تعجب کرد و گفت این کبادالوک با اون کبادالوکی که من میشناسم خیلی تفاوت داره. اون یه فرد فقیر بود که تا ام باید اون اجده ها اون رو خورده باشه. به خاطر همین به پسرک گفت ای کبادالوک میشه داستان زندگیت رو برای من تعریف کنی. کبادالوک هم که فردی بسیار مهربونی بود و هیچ ترس و واهمه از کسی نداشت برای اون پیرمرد مهربون داستان زندگیش رو تعریف کرد. اینجا بود که اون پیرمرد مهربون مهردار وقتی داستان رو شنید خیلی خوشحال شد که گردن کبادالوک رو اون روز نزده کبادالوک رو بغل کرد و بوسید و گفت من رو ببخش ای پسر مهربان من همون پیرمردی هستم که اون روز اون جعبه رو به تو دادم تا تو بری برای من سنگریزه از اون دریاچه بیاری من تو رو فرستاده بودم اونجا تا اون اجدهای اون دریاچه تو رو بخوره چون پادشاه دستور داده بود که من شما رو بکشم اما من از اونجایی که شما به من توت تارف کردی و من دیدم شما فرد مهربونی هستی دلم برای شما سوخت و این کار رو انجام ندادم که با که بسیار خوشحال شده بود و به آرزوی قلبی خودش رسیده بود پیرمرد رو بخشید و گفت من از شما هیچ ناراحتی و ای به دل ندارم پیرمرد مرد مهدار هم اومد پیش پادشاه و داستان رو برای پادشاه گفت و به پادشاه گفت که نام داماد شما کبادالوکه. در اینجا پادشاه یاد حرف درویش افتاد که درویش چند سال پیش بهش گفته بود داماد شما فردی به اسم کبادالوکه. و پیش خودش خوشحال شد که دخترش با کبادالوک ازدواج کرده و پیش خودش کرد کسی نمیتونه از سرنوشتی که داره فرار کنه. داستان ما به سر رسید. امیدوارم که از داستان ما خوشتون اومده باشه. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 سفر شاهزادهها و شاهان با اصف تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دی و غول و پری رشادت های قهرمان های ها. همه, و همه, و همه. همه و همه و همه در کانال تریکرامی هزار افسان داستان های صوتی ادساین مهران دوستی